الشیطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> والليل اذا يغشا و النهار اذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشدة فأما من أعطى تقا وصدق بالحسن فسنيسره لليسراء وأما من بخل واستغنا وكذب بالحسن فسنيسره للعسراء وما يغني عنه ماله إذا ترد إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلزى لا يصلىها إلا الأشق الذي كذب وتولى و سیجنبها الاطق الذي يأتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى سورة مبارکیه واللیل هست در سوریه واللیل موضوع تفرقه فیل اعمال هست در واقع سوره والشمس و سوریه واللیل هر دو در دو موضوع سوره اعلا هستند یکی موضوع توهید و یکی موضوع تزهید در سوره و موضوع توهید مطرح شد و تفرغه الاعتقاد دو نفر هستند یکی قد افلح من تزکا قد افلح من زکاها انسان رستگار انسان موفق، انسان کامیاب کسی که پاک میکند نفس خودش را از شرک، از کفر، از آلودگی ها و دوم وقت خواب من دساها کسی که آلودش میکند با کفر و شرک و غیره این بحث بحث تفرغه فی بود حال در سوریه واللیل می خوانیم تفریقه العمل را فاما من اعطى واتقى یک کسی هست که در راه خدا میده مال میده مصرف میکنه سخاوت میکنه و یکی دیگه هست و اما من بخل واستغنا پس اینجا تفاوت دو نفر به اعتبار عمل به اعتبار هزینه کردن خرج کردن الله عز و جل در این سوره هم سوگند یاد کرده به دوتا از پدیده مهم یکی لیل یکی نهار که مثال کفر مثل لیل هست و مثال نهار مثل مثال ایمام مثل نهار است <تصفح> الله می فرماید سوگند به شب وقتی که اذا یغشا همه جا را و همه چیز را در بر می گیرت. یعنی همه جا تاریک میشه و النهار اذا تجلى و سوگند به نهار و به روز وقتی که روشن میشه بس اون اولی مثال کفر هست و دومی مثال ایمان هست وما خلق الذکر والأنث و اون چی الله تعالی پیدا کرده از مرد و زن بس ببینید خلق خدا تعالی هم متفاوت هستن یکی لیل هست یکی نهار هس است یکی ذکر هست یکی انسا هست همونطوری که مخلوقات متفاوتا شب و روز داریم روشن و تاریک داریم مرد و زن داریم همچنین ان سعیکم لشتا این جواب قسم است سعی شما تلاش شما یا اعمال شما هم متفاوت است اعمال شما هم مختلف است فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى اما اون انسانی که میده در رای خدا و تقویر پیشه می گیرد یا اینکه از کفر و از شرک دوری می کند و صدق بالحسن حسنا را یعنی بهشت را تایید می کند تصدیق می کند بیشتر جه تفسیرش به بهشت آمده فسن، فسنو یسیروه لیل یسرہ ما برای او میسر می کنیم راه یسر را یسر تا تفسیر داره یعنی اینکه مراد از یسر بهشت است راه بهشت را برایش فراهم می کنیم یا مراد از یسر راه آسان یعنی راه شریعت راه دین راه ایمان بعض هم بهشت میشه چون راه شریعت و راه ایمان راه بهشت است اما اون انسانی که بخلا بخل, بخل بکند در دادن در بخشیدن و استغنا بده استغنا از ایمان استغنا از خدا در مقابل وتقا است و کذب را بهشت را تکذیب کند فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى برای اومان یسر میکنیم فراهم میکنیم و او را در واقع آماده میکنیم برای عسرا برای راه سخت برای راه جهنم عسرا یا راه جهنم یا راه کفر که منجر به جهنم بشه وقتی که با جهنم مواجه بشه فور ما يغني عنه ماله اذا تردد مالو او سرمایه اون چیزی که از, از او دور نمیکند دف نمیکند چیزی را اذا تردد وقتی که او هلاک بشه وقتی که او نابود بشه ان علينا للهدى وان لنا للاخره والاوله الله تعالی می فرماید که راهنمای کردن، هدایت کردن، راه نشان دادن هم بر ماست. و اما کسی که اون راه را میگیرد و راهنمایی میشه. درست میله. و اینا لنا لال آخرت و الاول. آخرت هم مال ماست، دنیا هم مال ماست. یعنی دارو الجزا هم مال ماست، دارو دار العمل هم مال ماست. لال آخره الجزاست و اولاب دار اعمال هست همین ها مال ماست ما فانذرتكم نالم تلظه من شما ربیم دادم شما را ترساندم این تخویف فوق است. هست از اون آتشی که شوله می زند از اون آتشی که زبانه می کشد لا یصله الا الاشقالذی کذب و تولا داخل اون آتش نمیره و وارد اون آتش نمیشه مگر بدبخترین انسان اون انسانی که اللذی کذب و تولا اون انسانی که تکذیب می کند حق را و یوم جزا و توحید را مبدأ و معاد را توحید و قیامت را اون انسان داخل جهنم میشه و تولا اون انسانی که پوشت داده یعنی بدبختترین انسان کیه اونی که عقیدهش هم خرابه کذبه اعتقادش خرابه که تقزیم میکند و توله عملش خرابه که بدین حق پشت میدهد و هال اتقا این بشارت است از اون آتش از اون جهنم دوری میکند اجتناب میکند با تقوی ترین انسان الاتقا با تقوی ترین انسان اونی که از همه بیشتر پرهیز می کند از شرک از کفر از معاصی دوری می کند اون انسانی که الَّذِي يُؤْتِ مَالَهُ یتزکا، اون انسانی که مال خودش را می ده تا پاک بشه مال خودش را بخاطر خدا میده اخلاص داره که میده تقوا دارد و اخلاص دارد مال خودش را میده منظورش باقی است. ببینید اینجا این الاتقا سیغه اسم تفضیل است. از همه با تقوی تر مسلمه که سیغه اسم تفضیل بر همه صدق نمی کند بر یک نفر از همه تقوه تر صدق می کند اون کی هست؟ مفسران اینجا تقریبا اجماع دارند اتفاق نظر دارند که مصداق این آیه حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی و شان نزول این آیه هم ابو بکر است. این آیه در رابطه با اینشون هست الله تعالی الاتقائی را رب می فرماید با ترین انسان که مال خودش را میده در راه خدا. ابو بکر رضی الله تعالی نه کسی بود که تمام مال خودش را در راه خدا داد. سرمایه خودش را مصرف کرد. در زمانی که در مکه مکرم بودند، اون زمان سرمایداران زیادی بودند اما مطرح ترین سرمایدار دوتا بودند یکی امیه بن خلف بود و یکی ابو بکر صدیق بود اینها در اون زمان در زمان قبل از بیست رسول الله قبل از اسلام با هم رقابت رغابت داشتند کار ابو تجارت بود داد و صدت بود و کار امیه فروشندگی برده بود برده میفروخت و برده زیاد داشت لذا وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوض شدند اون زمان سرمایه حضرت ابو بکر چهل هزار دینار بود چهل هزار دینار رقم بالایی هست در اون زمان سرمایه بالا بود اون زمان مشخص بود مثل امروز که خیلی از این کشورهای آزاد سرمایداران هرکس از مردم عامه مردم مقدار سرمایشون را می دونند همیشه اعلام می کنند تو روزنامها که فلان سرمایدار سرمایش به فلان میلیارد دلار رسید همیشه با افتخار سرمایه خودشون را اعلام می کنند اون زمان ابو رضی اللہ تعالی عنہ اعلام شد که سرمایش چهل هزار درهم هست و اما وقتی که اسلام آمد و رسول الله صلی علیه و وسلم مبعوض شد ایشون ارتباط خاصی و رسول الله داشت قبل از اسلام دوست بود و هم سن و سال بودن دوس سال از رسول الله کچک تر بود وقتی که ایشون ایمان آورد اولین کسی بود که به آن حضرت صلی الله علیہ وسلم ایمان آورد کسی بود که سرمایه خودش را در بست در راه پیامبر و در راه اسلام هزینه کرد و سرک کرد هر غلامی هر کنیزی که مسلمان می شد ایشون میرفت و او را خریداری میکرد و آزادش می کرد. غلام های زیادی اب عامر ابن فهیرا زبیرا فهدیا ام عباس و خیلی کنیزها و غلام‌ها را نوشتند که ایشون خریداری کرد و آزاد کرد امیه غلامی داشت به نام بلال رضی الله تعالی عنه بلال حبشی که بلال رخیلی میزد چون بلال مسلمان شده بود و داستان احد احد بلال معروف است ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ شنید که امیه غلام خودش را می با امیه از قبل ارتباط هم داشت و با باش رغابت هم داشت لذا رفت به طرف امیه اونجا وقتی که رفت دید که بلال بسته داره کتک می گفت چرا میزنی تو؟ گناه داره گفت که به تو ربطی نداره مال من هست صاحبش هستم میزنم تو اگر دلت براش سوخته پول بده آزادش کن حضرت ابوبک گفت که پول میدم آزادش میکنم چقدر حزینش امیه در صدد بود حضرت ابوبک غلامی داشت به نام نستاس یا نستاش کتاب هم نستاس آمده هم نستاش گفت که نستاش را بده آزادش کن حضرت ابو بک گفت که باش من بررسی میکنم کنم نستاس غلامی بود که قیمتش خیلی بالا بود و معروف بود رفت خونه خودش و نستاس را پرسید که مسلمان میشه یا نه او را دعوت داد او قبول نکرد گفت نه من مسلمان نمیشه گفت پس آوازش می کنم آمد و به امیه گفت که من آماده هستم مبادله می با تو او آماده بود که نستاس را با بلال تعویز بکند و مبادله بکند اما ابوبکر صدیق دو هزار دیگه هم بهش داد دو هزار در همه دیگه بهش داد و حضرت بلال را آزاد کرد نستاس را در اووضش داد. و بعد بلال را گفت که تو از این به بعد مال رسول الله هستی در خدمت رسول الله ص الله وسلم هستی. غلامی که این همه شکنجه دیده بود به خاطر اسلام به خاطر رسول الله اون را آزاد کرد برای اسلام و برای رسول الله. لذا همه مالش را مصرف کرد، فقط و فقط از مال خودش سی هزار درهم را مصرف کرد چار هزار درهم را باقی گذاشت اون چار هزار درهم را برای هزینه سفر که الله تعالی اعلام کرده بود هجرت را اما برای خود رسول الله هنوز دستور نداده بودند آن حضرت به ابو بکر گفتی بود که آماده باش که با هم میریم حضرت ابو بکر دو تا شتور خریداری کرده بود و یک انسان یک فردی به عنوان به سوی مدینه او را هم کرایه کرده بود که از راه خاصی انها را ببرد که همین طریق الهجره امروز هست و منتظر بودند هم شطرها هم رهنما آماده بود تا اینکه آن حضرت صلی علیه و وسلم حرکت کردند دستور دادند حضرت ابوبکر و رسول الله صلی علیه و وسلم رفتم هجرت کردند و بالاخره تا اینکه به مدینه رفتند و رسیدند هیچ مالی برای او باقی نمانده بود در مدینه ابوبکر جه از فقرا به حساب می آمد چون همه سرمایه خودش را در راه الله عز و داد در راه آزادی غلام ها و در راه خدمت به رسول الله هر جا که رسول الله می گفت این مفت صدیق نشده بود هر جا که آن حضرت صلی الله علیه و سلم می مال خودش را حزینه می کرد، مصرف میکرد. در در ها داریم که یه روزی حضرت ابو بکر صدیق رضی تعالی عنه نشسته بود و هیچی نداشت، یک چادری, چادری که به جای پیراهن و جامعه بر تن خودش میکرد، اون چادر را بگردنش بسته بود و مثل آدم فقیری نشسته بود، یک گوشهی جبرائیل امین آمد و به رسول الله صلی الله علیه و وسلم گفت که این فرد که اینجا نشسته سرمایش بجا هست آن حضرت صلی الله علیه و وسلم گفت که تمام سرمایه خودش را در راه اسلام حمرق را قربانی کرد، حمرق هزینه کرد،, کرد، حضرت جبرائیل گفت که خداوند عزواجل میگوید که از این بپرس راضی هست چیزی برایش نمانده راضی هست که همه مالش را در راه خدا داده رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وقتی که از ابو بکر پرسید ابو بکر متوجه شد احساساتی شد و برای شفته شد گفت انا عن ربی راز انا عن ربی راز من از ربم راضی هستم من تسلیم و مرازایتم کامل هست بعد جبرائیل گفت که الله میگه من هم ازور آزی هستم لذا این آیه در رابطه با ایشون هست الله میفرماید و سیو جنبوه حتما حتما از اون نار کنار می کشد دوری می کند با تقواترین انسان متقی ترین انسان الی یاتی مالَهُ یتزکا اونی که مالش را تاک تا پاک بشه مالش رمده به خاطر تزکیه به خاطر پاکی و مال احد من نعمة تجزا و نیست بر هیچ کسی بر او نعمتی که تجزا پاداش داده بشه یعنی به خاطر عوض نمیده بلکه او در واقع به خاطر خدا میده چیزی دیگر به خاطر عوضی به خاطر بدلی به خاطر کار دیگر و دین دیگر مالش را نمیده مصرف نمیکنه الا ابتغاء وجه ربه الاعلا مگر برای طلب رضایت رب اون رب اعلا الله عز وجل می فرماید وَلَسَوْ فیرضا، این انقریب راضی می یعنی خدای تعالی با او چنان معامله می کند خدای تعالی چنان به او عطا می کند که انقریب او را راضی و خشنود می کند بله این سوره مبارکه و بود که تفرقه فی العمل بیان شد دو نفر داریم یکی خدای تعالی بیش توفیق داده مال میده هزینه میکنه بخل نمیکنه دست دهندهی داره و یکی دیگه که بخل واستغنا بخل میکنه دست نگاه میداره و حتی بین اعلام بینیازی میکنه از ایمان از اسلام